اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق من و هر کس از شما برای خدا و پیام برش خضوع کند و از شما برای خدا کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را دوبار به او خواهیم داد و روزی ارزشمندی برای او آماده کرده این یا نساء نبی لستن که احد من النساء این اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا ای زنان پیامبر شما مانند هیچیک از زنان عادی دیگر نیستید اگر پرهیزگاری کنید پس در سخن گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی که در دلش بیماری است کند و سخن شایسته بگوید. وقرن فی بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى واقين الصلاة واقين الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما ما الله عنكم الرجس تطهیرا و در خانه های خود بمانید و به شیوه جاهلیت نخستین زینت های خود را آشکار نکنید و نماز را برپادارید و زکات را بدهید و خدا و پیام برش را اطاعت کنید خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه باید شما را پاک سازد قل ما یتلا فی بیوتک من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا و را در خانه هایتان از آیات خداوند و حکمت خوانده می شود یاد کنید بیگمان گمان خداوند باریک بین آگاه است این المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِنَ وَالصَّائمَاتِ وَالْحَافِظِينَ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما همانا مردان مسلمان وزنان مسلمان مردان مؤمن وزنان مؤمن مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر، و زنان صابر مردان با و زنان با مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند، و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند۔ و مردانی که خدا را بسیار یاد می کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است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 برای هیچ مرد و زن مؤمنی شایسته نیست که وقتی الله و رسولش به کاری فرمان می‌دهند در برابر آن فرمان اختیاری برای خیش قائل باشد و هر که از الله و رسولش نافرمانی کند در گمراهی آشکاری گرفتار شده است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 و تخش الناس و الله أحق أن تخش فلما قبض زيد منها وترز ووجنا كها لكي يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا به یاد آور زمانی را که به زید نهارسه حارسه کسی که الله به او نعمت اسلام داده بود و تو نعمت آزادی بخشیده بودی به نصیحت میگفتی همسرت را نگاه دار و از الله پروا کن تو در دل خود مطلبی را در مورد ازدواج با زینب پس از طلاقش پنهان میداشتی که الله آن را آشکار نمود و از سرزنش مردم میترسیدی حالان که الله سزاوار تر است که از او بترسی. پس هنگامی که زید نیاز خود را از وی به پایان برد و طلاقش داد او را به ازدواج تو در تا رسم جاهلی را براندازیم و هیچ گناهی نباشد که مؤمنان با زنان پسرخانده هایشان که از آنان کام گرفتند و طلاقشان داده اند ازدواج کنند و فرمان الله همواره انجام میپذیرد. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خولوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا پیامبر در انجام آنچه الله برایش حلال نموده هیچ گناهی مرتکب نشده است ZnajdEP. این کار سنت الهی است و درباره پیامبرانی که پیشتر بودن نیست صدق می و فرمان الله همواره سنجیده و دقیق است الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رسالات الله وَيَخْشَوْنَهُ ولا يخشون أَحَدًا إِلَّا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا همان پیامبرانی که پیامهای الهی را به مردم ابلاغ می کنند و تنها از او می‌ترسند و از هیچ کس جزو ترسی ندارند و الله برای محاسبه اعمالشان کافی است ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول الله ولكن رسول الله و خاتم النبی و الله بكل شيء علیمه محمد پدر هیچی از مردان شما از جمله زید نیست بلکه رسول الله و خاتم پیانبران است و بدانید که الله همواره از هر چیزی آگاه است يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ای کسانی که ایمان آورده اید الله را بسیار یاد کنید وسبحوه بکرتا و سبحوه بكره و به پاکی بسطایید هو الذي صلی که که بر شما درود میفرستد و فرشتگانش نیز دعایتان میکنند تا شما را از تاریکی‌ها به سوی نور بیرون ببرد و الله نسبت به مؤمنان همواره مهمان است تحیتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما تهیت آنان در روزی که با او دیدار می کنند سلام است و برای آنها پاداش ارزشمندی آماده کرده است يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ای پيامبر ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا و دعوت کننده به سوی خداوند به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادیم و بشر المؤمنین و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا و مؤمنان را بشارده که برای آنها از سوی خداوند فضل بزرگی است. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذائهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا واز و ومنافقان اطاعت مكن آزارشان را واگذار و, و به آنان نكن نکن و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع قسنده است یا ایوها الذين <سؤال> آمنوا اذا نکحتم المؤمنات <سؤال> ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم کسانی من قبل ان تمسسوهم فما لكم من تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا كسانيك هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید آنگاه پیش از آن که با آنها هم بستری کنید طلاقشان دادید پس ادعی برای شما بر آنها نیست که شما آن را به شمارید. لذا آنها را با هدیه مناسب بهرهمند سازید و به نیکوترین بچه رهایشان کنید یا <تصفح> نبي اِنا احلاَلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما, وما ملكت يمينك مما افا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 وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي ازواجهم وما ملكت ملکت ایمانهم لا يكون علیک حرج وكان الله غفورا رحیما ای پیانبر ما هم سرانت را که مهرشان را پرداخت ای برای تو حلال کردیم و نیز کنیزانی را که خدا به تو ارزانی داشته است و دختران امویت و دختران امه هایت و دختران دائیت و دختران خاله هایت که با تو هجرت کرده اند ازدواج با آنها برای تو حلال کردی این و نیز زن مؤمنی را که اگر خود را به پیام بر ببخشد، اگر پیام بر بخواهد او را به زنی گیرد این حکم ویژه توست نه دیگر مؤمنان به راستی که ما میدانیم آنچرا که بر آنها درباره همسرانشان و کنیزانشان واجب کرده ایم تا بر تو هیچ هرجی نباشد و خداوند آمرزنده مهربان است ترجمه من تشاؤ من و كَمَن تَشَاءَ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ والله يعلم ما قلوبكم وكان الله علیما حلیما نوبت هر یک از همسرانت را که می میتوانی به تأخیر اندازی و هر کدام را می میتوانی نزد خود جای دهی و اگر هر یک از آنان را که نوبتش به تأخیر افتاده جویا شوی و بخواهی او را نزد خود جای دهی هیچ گناهی بر تو نیست این رفتار مناسبتر است به اینکه چشمشان روشن شود و اندوهگی نباشند و همگی از زمانی که عادلانه به آنان اختصاص میدهی خوشنود گردند و الله میداند که شما مردان در باری محبت بیشتر به برخی زنانتان چه در دل دارید و الله دانای بردبار است لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا As in pass. دیگر ازدواج با هیچ زنی برای تو حلال نیست و نباید برخی از همسرانت را طلاق دهی تا همسر دیگری به جایش برگزینی. حتی اگر زیبایی آنان مورد میل و پسندت باشد به استثنای کسانی که به صورت کنیز در اختیار تو هستند و الله همواره بر هر چیزی مراقب است يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم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 وَمَا کسانی لَكُمْ أَن كَانَ آورده اید به خانه‌های پیامبر داخل نشوید مگر آنکه برای صرف غذا دعوت شده باشید بی آنکه با ورود پیش از موعد در انتظار فرارسیدن وقت غذا بنشینید بلکه هنگامی که شما را فرا وارد شوید و پس از صرف غذا پراکنده شوید و سرگرم بحث و گفتگو نشوید بی گمان این رفتار پیامبر را می آزارد و او از ابراز این موضوع در برابر شما شرم دارد ولی الله از بیان حق شرم ندارد همچنین هنگامی که از همسران پیامبر درخواستی دارید از پشت پرده از آنان بخواهید و پرده را بالا نزنید و یا یک سر وارد خانه نشوید این کار برای دلهای شما و ایشان پاکتر است نیست سزاوار نیست که رسول الله را بیازارید و هرگز پس از پیامبر با همسرانش ازدواج نکنید این کار در پیشگاه الله گناهی بزرگ است ان تو بدوش او تخف فإ الله كان بكل شيء علیما اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان دارید بدانید که الله از هر چیزی آگاه است ل جون ح نفبا. ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا اخوانهم ولا ولا ولا الله برانان گناهی نیست که در حضور پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان همدینشان. و بردگانشان بدون حجاب باشند و ای زنان از خدا بترسید قطعا خداوند بر همه چیز گواه است ان الله وملائكته یصلون علی النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه و تسلیما بیگمان خدا و فرشتگانش بر پیام بر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده بر او درود فرستید و سلام بگویید سلامی نیکو إن الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا همانا کسانی که خدا و برش را آزار میدهند خداوند آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنها عذاب خارکننده ای آماده کرده است والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا و مبینا و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی هیچ گناهی که مرتکب شده باشند آزار می به راستی بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند یا نبي قل ازواجک و به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را برخیش فرو افکنند و با آن سر و صورت و سینههایشان را بپوشانند. این مناسب تر است تا شناخته شوند پس مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزندی مهربان است. لا اِلَّم يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است و شایع پراکانان در مدینه از کار خود باز نایستند یقیناً تو را بر ضد آنها میشورانیم و بر آنها مسلط می‌گردانیم سپس جز اندکی در کنار تو در آن نباشند ملعونی ااینما ثقفو و وقتلوا تقتيلا ترد شدگانند هر کجا یافت شوند گرفته خواهند شد و به سختی کشته خواهند شد سنت الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا این سنت خداوند است در باری کسانی که پیش از این گذشتند و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. یسالک الناس عن الساعه قل انما علمها الله وما یدریك لعل الساعة تكون قریبا ای پیامبر مردم تو را از زمان قیام قیامت میپرسند بگو علم آن تنها نزد الله هست و تو چه میدانی شاید که قیامت نزدیک باشد ان الله لعن الكافرین واعد لهم سعيرا بی تردید خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنها آتش سوزان آماده کرده است خالدین فیها ابدا لا یجدون که جاودانه در آن خواهند ماند هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت یوم تقلب هم قولون الله و روزی که صورتهایشان در آتش جهنم گردانیده شود پشیمان میشوند و میگویند ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم و رسول خدا را اطاعت کرده بودیم و قالو ربنا و, و, و گفتند پروردگارا ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم پس ما را از راه به بردند و گمراه کردند ربنا آتهم بعفین من العذاب اتيم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا كبيرا پروردگارا آنها را از عذاب دور چندانده و آنها را به لعنتی بزرگ و سخت لعنت فرما یا أیها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها ای کسانی كه ایمان آوردهاید مانند کسانی نباشید كه موسی را آزار دادند آنگاه خداوند او را از آنچه در حق او گفته بودند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و صاحب منزلت بود یا الَّذین اتقوا الله قولا ای کسانی که ایمان آوردید از خدا ای کسانی ایمان از خدا بترسید و سخن درست و حق بگویید يصلح لكم احما لكم وف لكم ذونوبكم وما يطيع الله واصله فقدد فز فزن عظما تا خداوند کارهایتان را برایتان اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هرکس که از خدا و پیام برش اعتاعت کند، یقیناً به کامیابی عظیمی نائل شده است. این عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها فابين ان يحملنها, يحملنها واشفق منها وحملها الانسان همانا ما امانت خیش را بر آسمانها و زمین و ها ارزه داشتیم پس آنها از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند و انسان آن را بردوش گرفت که او بسیار ستمکار نادان است ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تا سرانجام خداوند مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و خداوند توبه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بپذیرد و از گناهانشان درگذرد و خداوند آمرزنده مهربان است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير حمد و ستایش مخصوص خدایی است که آنچه در آسمانها ها و آنچه در زمین است از آن اوست و ستایش در سرای آخرت نیز از آن اوست و او حکیم آگاه است يعلم ما يلج في الارض وما ما یخرج منها وما ينزل من السماء وما ما یعرج فیها الرحيم الرحیم الغفور آنچه را که در زمین فرو می و آنچه را که از آن بیرون می آید و آنچه را که از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می روید و عمر است. و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وكساني كافر شده اند گفتند قیامت به سراغ ما نخواهد آمد ای پیامبر بگو آری به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که حتما به سراغ شما خواهد آمد به اندازی ذره در آسمان ها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچک از آن و نه بزرگ تر مگر اینکه در کتابی آشکار ثبت است لیجزیا الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولائی لهم مغفرة و کریم تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد آنان برایشان مغفرت و روزی ارزشمندی است والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم وكساني که مبارز کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوح می آورند برای آنان عذابی از کیفر دردناک خواهد بود ویری الذین أوتوا العلم الذي انزل الیك من ربك هو الحق ویهدی الی صراط العزیز الحمید وکسانیكه به ایشان علم داده شده است میدانند آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خداوند پیروزمند ستوده هدایت میکند وقال الذین كفروا هل ندلكم علی رجل ینبئكم اذا مزقتم كل ممزقی انكم لفی خلق جدید و کسانی كه کافر شدهاند گفتند آیا مردی به شما نشان دهیم كه به شما خبر میدهد هنگامی که مردید و کاملا متلاشی و پراکنده شدید همانا شما بار دیگر در آفرینش تازه ای خواهید بود افترا علی الله کذباً ان جنه بل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ فِي العذاب والضلال الْبَعِيدِ آیا بر خدا دروغ بسته یا به او دیوانگی است؟ چون این نیست بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دور و درازی هستند اَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْتِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مونیب. آیا به آنچه پیش روی و آنچه پشت سر آنان از آسمان و زمین است نگاه نکرده اند؟ اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو می بریم یا تکه ای از آسمان را بر سر آنان می افکنیم بیگمان در این نشانه ای برای هر بنده بازگشت کننده است. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ اَوْوِبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ و ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ دادیم گفتیم ای کوها و ای پرندگان با او در تسبیح گفتن هم‌آواز شوید و آهن را برای او نرم کردیم انعم لسابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصيد ما به او دستور دادیم که ذره‌های بلند و فراخ بساز و در بافتن حلقه ها اندازه نگهدار و کار شایسته انجام دهید. همانا من به آنچه انجام می دهید بینا هستم. ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر. و اسلنا له عین القطر. ومن من الجن من يعمل بين يديه باذن بي اذن ربه. و من منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبح گاهان مسیر یک ماه را تیمی کرد و شام گاهان مسیر یک ماه را و چشمه مثل مزاب را برایش اشربان ساختیم و از جن کسانی را مسخر کردیم که به فرمان پروردگارش در پیش او کار می کردند. و هر که از آنان که از فرمان ما سرپیچی می کرد، او را از عذاب آتش سوزان می چشندیم یعملون له ما محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور سلیمان میخواست جنها برایش میساختند از قبیل معبدها و و کاسه هایی همچون حوزها و دیگ های ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود و به آنها گفتیم ای آل داوود سپاس این همه نعمت را به جا آورید و اندکی از بندگان من سپاس گذارند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 پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگش آگاه نساخت مگر جنبنده زمین که اصایش را میخورد، پس چون بر زمین افتاد جنیان دریافتند که اگر قیب میدانستند در آن عذاب خار کننده نمی مندند. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور همانا برای قوم سبا در مساکنشان نشان ای بود و باق بزرگ از راست و چپ و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکر گذارید شهریست پاکیزه و پروردگاری آمرزنده فا اعرضو علیهم سیل العرم و وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتی أكل خمط وأسل وشيء من صدر قليل پس آنها روی گرداندند آنگاه سیلی ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو باغ پر میوهشان را به دو باغ بی ارزش با می های تلخ و درختان شور گز و اندکی از درخت کنار مبدل ساختیم ذلک جزیناهم بما کفرو و نجازی الا الكفور. این کیفر را به خاطر آن کناس کردند به آنها دادیم. و آیا جز ناسپاسان را مجازات میکنیم و جعلنا بینهم و بین القرآن بارکنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السیر سيروا فيها ليالي و ایاما ومیان و میان آنها و قریه هایی که برکت داده بودیم قریه های آباد و به هم پی بسته بر سر راه قرار دادیم و در میان آنها آمد و شد مقرر داشتیم و به آنها گفتیم در این آبادی ها با عمد و امان شبها و روزها سفر کنید فقالو ربنا بعد بین اسفارنا و ظلمو فسوسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآیات لكل صبر شكور پس گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیوکن و بر ستم کردند پس ما آنها را داستانهایی برای عبرت دیگران قرار دادیم و آنان را سخت پراکنده ساختیم بیگمان در این ماجرا برای هر سب کننده سپاس گذاری نشانه هاییست صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین و یقینا ابلیس گمان خود را در باری آنها درست یافت پس همگی از او پیروی کرده جز گروه اندک از مؤمنان و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالاخره ممن من هو منها فی شک و ربک علی كل شيء حفیظ و او را برانان هیچ سلطه ای نبود مگر اینکه که خواستیم معلوم بداریم کسی را که به آخرت ایمان می آورد از کسی که او از آن در شک و تردید است و پروردگار تو بر همه چیز نگاه است. قُلِ دعُوا الَّذِينَ زَعَنْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ <سؤال> ذَرَّتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ای بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید به فریاد بخوانید. آنها هم هموزن زرعی در آسمانها و در زمین مالک نیستند و در آفرینش و تدبیر آن دو هیچ شرکتی ندارند و او از میان آنها یاور و پشتیبانی ندارد و و شفاعت عیده الا لمن له، اذا عن قال الحق، وهو العلي الكبير. نزد مگر برای کسی که او خود برایش اجازت داده باشد تا زمانی که استرا و نگرانی از دلهایشان برطرف شود گویند پروردگارتان چه گفت؟ گویند حق را فرمود و او بلند مرتبه بزرگ است قل من یرزقكم من السماوات والارض قل الله و او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین ای پیامبر به مشرکان بگو چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می دهد. در پاسخ بگو الله و ما یا شما بر طریق هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم قل لا عما اجرمنا ولا نسأل تعملون بگو شما از گناهی که ما مرتکب شده ایم باز خاص نمیشوید و ما نیز از آنچه شما انجام میدهید باز خاص نمیشویم قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم بگو پروردگار ما همه ما و شما را گرد میآورد سپس در میان ما به حق داوری می کند و او داور داناست قل أروني الذين ألحقوا به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید هرگز چنین نیست بلکه او خداوند پیروزمند و حکیم است و ما ارسلناک الا که فتل لنناس بشیرا و نذیرا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ای ما تو را برای همه مردم جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. کن بیشتر مردم نمیدانند ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین میگویند اگر راست گویید این بعد قیامت کی خواهد بود قل لكم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدمون بگو عاد شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی می گیرید و قال الذین کفرولا نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بين یدیه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 یه کسانی که کافر شدند گفتند ما هرگز به این قرآن ایمان نمی آوریم و نه به آن که پیش از آن بوده ای پیامبر اگر ببینی در روز قیامت هنگامی که ستمکاران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب رسی نگه داشته شده اند از حال آنها به شگفت می آیی برخی از آنها سخن برخی دیگر را پاسخ می دهند و هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد کسانی که به استزعاف کشیده شده اند به کسانی که استقبار و سرکشین نمودند، گویند اگر شما نبودید ما قطعا مؤمن بودیم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاكم بل كنتم مجرمين کساني که سرکشی و تکبر کرده به کسانی که به استضعاف کشیده شده اند گویان آیا ما شما را از هدایت بازداشتیم بعد از آنکه به سراغ شما آمد ؟ هرگز بلکه شما خود مجرم بودید. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وأسر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون ومستسفان بمستكبران غياند بلکه مکروحیل شب و روز شما سبب شد که از هدایت بازمانیم. هنگامی که به ما دستور میدادید که به خدا کافر شویم و برای او هم تایانی قرار دهیم و هنگامی که عذاب الهی را ببینند پشیمانی خود را در دل پنهان دارند و ما قلها در گردنهای کسانی که کافر شدند بگذاریم آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون ما در هیچ قریه ای حشتار دهنده ای نفرستادیم مگر این متنعمان آنها که مستناز و نعمت و قدرت بودند گفتند بیتردید ما به بی آنچه فرستاده شده اید کافریم و قالوا نحن اكثر اموالا و وما نحن بمعذبیم و گفتند انوال به اولاد ما از شما بیشتر است و این دلیل آن است که خدا از ما خشنود است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ای پیام بر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هرکس که بخواهد فراخ و یا تنگ می کند و این نشانه محبت و رضایت خداوند نیست ولی کن بیشتر مردم نمی دانند وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازلِ الفَائِلِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ انبالتان و اولادتان چیزی نیستند که شما را نزد ما نزدیک و مقرب سازند جز کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند پس اینان پاداش مضاعف در برابر کارهایی که انجام داده اند دارند و آنها در غرفه های بلند بهشتی در امن و امان هستند وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اولئك فِي العذاب محضرون و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوح می آورند اینان در عذاب احزار می شوند قل این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 بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می و یا برای او تنگ می سازد و هر چیزی را در راه خدا انفاق کنید پس او عوض آن را می و او بهترین روزی دهندگان است. و یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائكة أهؤلاء اولائی كانوا کانو یعبدون و, و روزی را که خداوند همه آنان را برمیانگیزد انگیزد سپس به فرشتگان میگوید، آیا اینها شما را پرستش میکردند قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا یعبدون الجن بهم مؤمنون فرشتگان گویند تو منزهی تنها تو ولی و کارساز ما هستی نه آنها آنان هرگز ما را پرستش نمی کردند بلکه جن و شیاطین را پرستش می کردند بیشترشان به آنها ایمان داشتند فالیوما لا یملک بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذین ظلموا ذوقوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا مَارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ پس امروز برخی از شما برای برخی دیگر مال که هیچ سود و زیانی نیست و به کسانی که ستم کردند می بچشید عذاب آتشی را که آن را تقزیب می کردید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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى وقال قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ به هنگامی که آیات روشن ما برانان خوانده شود گویند این محمد جز مردی نیست که میخواهد شما را از آنچه نیاکانتان می بازدارد و گویند این قرآن جز دروغ بزرگی که به هم بافته شده نیست و کسانی که کافر شدند هنگامی که حق به سراغ آنها آمد در باری آن گفتند این قرآن جز سهری آشکار نیست و ما من کتب و ما ارسلنا ایلیهم قبلك من نذیر و ما پیش از این چیزی از کتابهای آسمانی را به آنها ندادی ایم که آن را بخانند و بر اساس تو را تکذیب کنند و پیش از تو هیچ هشدار دهندی ای به سوی آنها نفرستادیم و کذب من قبلهم وما وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتيناهم فكذبوا فَكَذَّبُوا رُسُلِی كان كَانَ نَكِيرٌ و کسانی که پیش از آنها بودند نیز پیام ما را تقذیب کردند در حالی که اینها به یک دهمه ده آنچه به آنها داده بودیم نرسیده اند آنگاه آنها پیامبران مرا تکذیب کردند بنگر مجازات من چگونه بود قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن این هو الا نذیر لکن بین یدی عذاب شدید ای پیام بر بگو همانا من شما را به یک خصلت اندرز می دهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا برخیزید سپس بیاندیشید که این همنشین شما هیچ گونه دیوانگی ندارد او برای شما جز خشدار دهندی ای پیشا پیش عذاب شدید نیست قل ما سألتكم من اجر فهو لکم این اجری إلا على الله وهو على كل شيء شهید ای پیام بگو هر مزدی که از شما خواست ام پس آن برای خود شما باد، پاداش من تنها بر عهده خداوند است، و او بر همه چیز گواه است. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب ای پیام بر بگو، بیگمان پروردگارم حق را بر قلب پیام بران خود می افکند، آن پروردگاری که دانای غیب هاست، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید ای پیامبر بگو حق آمد و معبودان باطل آفرینش را آغاز می کند و نه دوباره باز می کرداند قل این ضللت فإنما أضل على نفسي و این احتدیتو یوحی ایلی ربی اینه سمیع قریب ای پیام بگو اگر من گمراه شوم تنها بر زیان خودم گمراه می و اگر هدایت یابم پس به خاطر آن است که پروردگارم به من وحی میکند یقینا او شنوای نزدیک است ولو لو ترائید فزیعو فلا فوت و من مكان قریب و اگر ببینی هنگامی که مسترب و نگران شوند آنگاه رهایی از عذاب نباشد و از جای نزدیکی گرفته شوند تعجب خواهی کرد و به و, له من مكان و در آن حال گویند به آن قرآن ایمان آوردین ولی چگونه میتوانند از فاصله دور به آن دست یابند و قد کفرو بهی من قبل و یقذفون بالغیب من مكان بعید. در حالی که آنها پیش از این در دنیا به آن کافر شدند و از جای دور نادیده و بدون آگاهی تیری می افکندند و بینهم و بینما یشتهون کما فعل بی اشیاعه من قبل انهم كانوا فی شك مریب و میان آنها و آنچه میخواستند جدایی افکنده شد همان گونه که از پیش با امثال آنها انجام شد بیگمان آنها سخت در شک و تردید بودند بسم الله الرحمن الرحیم بناهم خدا وند بخشندیم ایربان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولاً ألي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء اِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ همدو ستایش مخصوص خداوند است آفریننده آسمانها و زمین کسی که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه هرچه بخواهد در آفرینش می بیگمان خداوند بر هر چیزی تواناست ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم هر رحمتی را که خدا برای مردم بگشاید کسی نمی تواند که بازش دارد و آنچه را باز دارد کسی جز او نمی تواند آن را روان سازد و او پیروزمند و حکیم است یا <سؤال> <سؤال> <سؤال> ایوه الناس اذکرون نعمت الله عليكم هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤثكون. ای مردم نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آیا آفریننده ای جز الله هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد هیچ معبودی جز او نیست پس چگونه از حق منحرف میشوید؟ وای كذذب و که فقط کذیبه من قابلیک وائل الله ترجع الامور. و اگر تو را تگزیب کنند غمگین نباش همانا پیام برانه پیش از تو نیست تگزیب شدند و همهی کارها به سوی خدا بازگردانده گردنده میش يا أیها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ای مردم یقینا وعده خدا حق است پس زندگی دنیا شما را نفریبد فریب کار شما را نسبت به خدا نفریبد ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیكونوا من اصحاب السعیر مسلما شیطان دشمن شماست پس او را دشمن گیرید او فقط از پیروانش دعوت میکند تا همه از اهل آتش سوزان جهنم باشند الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ کسانی که کافر شدند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا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 آیا کسی که کردار بدش برای او آراسته شده پس آن را نیک و زیبا می بیند همانند کسی است که چنین نیست پس بیگمان خداوند هر کس را که بخواهد گمراه می سازد و هر کس را که بخواهد هدایت می کند پس نباید که جانت به خاطر شدت تعصف و حسرت برانان از بین برود بیشک خداوند به آنچ انجام میدهند داناست و الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فاحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور و الله کسی است که باد ها را فرستاد آنگاه آن باد ها را برمی انگیزد پس آن ابر ها را به سوی سرزمین مرد راندیم آنگاه به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده کردیم برانگیختن مردگان از گور ها نیست چنین است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 و هو یبور کسی که خواهان عزت است، پس بداند که عزت همگی از آن خداست سخن پاکیز به سوی او بالا می رود و خداوند عمل صالح را بالا می برد و کسانی که نقشه و نیرنگ های بد می کشند برای آنها عذاب سختی است و نیرنگ و نقشه های بد آنها نابود می شود و الله خلقكم من تراب ثم من نطفة، ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ و خداوند شما را از خاک سپس از نطف آفرید انگاه شما را جفتهای یک دیگر قرار داد و هیچ ای باردار نمی شود و نمی زاید مگر به علم او و هیچ سال خردعی عمر طولانی نمی کند و یا از عمرش کاست نمی شود مگر آنکه در کتاب لوح محفوظ ثبت است بیگمان این کارها بر خدا آسان است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 وتری الفلك فیه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و آن دو دریا یکسان نیستند این یكی آب شیرین و است كه نوشیدنش خوشگوار است و آن يكي شور و تلخ است و از هر دو گوشتی تازه میخورید و از آنها چیزهایی زینتی بیرون می آورید که می پوشید و کشتی را در آن دریا می بینی که آبها را می شکافت و به سوی مقصد خیش پیش می رود تا از فضل خدا روزی به جوید و شاید که سپاس گذارید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 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من او شب را در روز داخل می و روز را در شب داخل می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است این است الله پروردگار شما فرمان از آن اوست و کسانی را که به جای او میخانید وزن پوست ناز و که هسته خرما مالک نیستند این تدعوهم لا يسمعو دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبیر اگر آنها را بخوانید صدای خواندن شما را نمی شنوند و به فرض اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگویند و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند و هیچ کس مانند خداوند آگاه خبردارت نمی کند یا ایوه الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید ای مردم شما همگی به خدا نیاز مندید و تنها خداونده است که بینیاز ستوده است ای چه یزه بکم بخلق جدید. اگر بخواهد شما را از بین میبرد و آفرینش تازه ای می آورد. و ما ذلك علی الله بعزیز. و این کار بر خداوند دشوار نیست. ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه و من تزکه فإنما يتزکه لنفسه و إلى الله المصير و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد و اگر شخص گرانباری دیگری را برای حمل بار گناه خود بخاند چیزی از آن بار برداشته نمی شود. هر هرچند خیشاوند نزدیک او باشد تو ای پیامبر تنها کسانی را هشدار میدهی که از پروردگارشان در پنهانی میترسند و نماز را بر برپا میدارند و هرکس پاک گردد و تقوا پیشه کند پس بداند که تنها به سود خیش پاک شده است و بازگشت همه به سوی خداست وما ما یستوی الأعمى والبصیر و نا بینا و بینا هرگز برابر نیستند ولا لا الظلمات و لا النور و ها و نور ولا لا الظل ولا و لا و سایه و باد سوزان وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور و هرگز زندگان و مردگان یکسان نیستند بیگمان خداوند هر کس را بخواهد میشنواند و تو ای پیامبر نمیتوانی توانی سخنت را به درگور خفتگان بشنوانی این انت الا نذیر تو جز حشتار دهنده ای نیستی اینا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیر و من امت الا خلافیها نذیر <معتنا> <Assassinship> یقینا ما تو را به حق بشارت دهنده و هشتار دهنده فرستادیم و هیچ امتی نیست مگر آن که در میان آن هشتار دهنده ای آمده و گذشته است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 و اگر تو را تکذیب کنند چیز تازه‌ای نیست همانا کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند پیامبرانشان با دلایل روشن و نوشته‌ها و کتاب روشنگر به سراغ آنها آمدند ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان سپس کسانی که کفر ورزیدند فرو گرفتم پس بنگر مجازات من چگونه بود؟ الم تر ان الله انزل من السماء ما فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی مسود آیا ندیدی همانا خداوند از آسمان آبی نازل کرد که به وسیله آن میوههایی با رنگ های گوناگون از زمین بیرون آوردین؟ واस्को هانیز راههایی به رنگ سفید و سرخ رنگارنگ و به غایت سیاه پدید آوردیم و من الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء الله غفور و همچنین از مردم و جنبندگان و چهار پایان با رنگ های مختلف پدید آوردیم جز این نیست که از میان بندگان خدا دانایان از او می ترسند بی تردید خداوند پیروز بند آمرزنده است ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيت يرجون تجاره لن تنبور بیگمان کسانی که کلام خدا را تلاوت میکنند و نماز را برپا پا میدارند از آنچه روزی شانداد این پنهان و آشکار انفاق می کنند به تجارتی پرسود که هرگز زیان و کساد ندارد امید دارند لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور تا خداوند پاداش آنها را به تمامی بدهد و از فضل خود بر آنها بیفزاید بیگمان او آمرزندی سپاس گذار است وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ان الله بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِید این پیامبر، آنچه از این کتاب به تو وحی کردیم حق است که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است یقینا خداوند به حال بندگانش آگاه بیناست ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير سپس این کتاب را به کسانی از بندگان من که برگزیده بودیم به میراست دادیم. پس برخی از آنان برخود ستم کردند و برخی از آنان میان رو بودند و برخی از آنان به فرمان خدا در نیکی ها پیش دازند. این همان فضل و بخشایش بزرگی است. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر پاداش آنها باغ‌های جاویدان بهشتی است که به آن وارد می‌شوند در آنجا به دستبند های از طلا و مروارید آراست میگردند و لباس هایشان در آنجا حریر است وقال الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور و گویند حمد و ستایش مخصوص خداونده است که اندوه را از ما دور کرد یقینا پروردگار ما آمرزندی سپاس گزار است الذی احللنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب همان کسی که از فضل خیش ما را در این سرای اقامت جای داد که در آنجا هیچ رنجی به ما نمی رسد و در آنجا هیچ خستگی به ما نمی رسد كفروا لهم لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عذابها. کذالی که نجزی کل کفور کسانی که کافر شدند برای آنها آتش جهنم است نفرمان فرمان مرگ بر آن صادر شود تا بمیرند و راحت گردند و نه چیزی از عذابش از آنها کاسته شود اینگونه هر ناسپاسی را کیفر می دهیم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 فذوقوا فما للظالمین من نصیر و آنها در آن آتش فریاد میزنند پروردگارا ما را بیرون آر تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام میدادیم آیا آنقدر شما را عمر ندادیم که پند گیرندگان در آن پند گیرند و حشتار دهنده نیز به سراغ شما آمد پس طعم عذاب را بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست این الله عالم غیب السماوات والأرض انه علیم بذات الصدور بیگمان خداوند دانای نهان ها و زمین است و همانا او به آنچه در درون سینههاست داناست هو الذی جعلكم خلائف فی الأرض فمن كفر فعلیه كفره وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ الا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا خسارا. او کسی است که شما را در زمین جان پیشینیان قرار داد پس هر کس که کافر شود او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و دشمنی در نزد پروردگارشان چیزی نمی افزاید و نیز کافران را کفرشان جز زیان چیزی نمی افزاید قل أرأيتم شرككم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل این یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ای پیامبر بگو آیا معبودانتان که به جای خدا می دیده اید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدهاند یا اینکه در آفرینش آسمان ها شرکتی دارند یا به آنها کتابی داده ایم که آنها دلیلی از آن برای شرک خود دارند؟ نه، هیچیک از اینها نیست بلکه ستمکاران جزفری به یک دیگر بعد اینه دهند این الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولا تردید من احد من بعده كان حلیما غفورا بیتردید خداوند آسمانها و زمین را نگه میدارد از آنکه از نظام خود منحرف شوند و اگر منحرف گردند کسی جز او نمیتواند آنها را نگه دارد بیگمان او برد بار آمر زنده است و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدا الامم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا و کفار قرش با محکم ترین سوگندهایشان و با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد کردند که اگر خشتار دهندهای برای آنان بیاید از هدایت یافته ترین امتها خواهند بود پس چون پیام بر خوشتار ای بر آنان آمد جز فرار و نفرت از حق چیزی بر آنان نیفزود استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء إلا الا فهل ينظرون الا سنة الاولی فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا اینها به خاطر استکبار در زمین و نیرنگهای های بدشان بود و نیرنگ های بد جز دامنگیر صاحبانش نمیگردد انگاه آیا آنان چیزی جز سنت و شیوه خدا با پیشینیان را انتظار دارند پس هرگز برای سنت و شیوه خداوند دیگر گونی یابی اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف كان عاقبت الذین من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ايا آنها در जमीन نگشت اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود، در حالی که آنان از اینان نیرومندتر بودند، و هیچ چیزی در آسمانها و زمین نیست که خدا را ناتوان سازد، بیگمان اودانای تواناست، وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ, ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا و اگر خداوند مردم را به سبب آنچه که انجام داده اند مجازات کند هیچ جنبند ای را بر روی آن باقی نخواهد گذاشت ولی کن آنها را تا زمانی معین به تأخیر میاندازد. پس هنگامی که عجل آنها فرارسد سد یقینا خداوند به بندگانش بیناست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان یاسین یا <متصفيق> سین و القرءان الحکیم سوگند به قرآن حکیم انک لمن المرسلین که تو قطعا از پیام بران ما هستی علی صراط مستقیم بر راه راست قرار داری تنزیل العزیز الرحیم این قرآن فرو رستاده خداوند پیروزمند و مهربان است لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تا گروهی را هشدار دهی که نیاکانشان هشدار نیافته اند، پس آنان غافلند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون به راستی فرمان الهی بر بیشتر آنان تحقق یافته است، پس آنان ایمان نمی آورند. ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون بیگمان ما در گردنهای آنان قلهایی قرار دادیم پس آن قلها تا چانه هاست لذا سرهایشان را بالا نگاه داشته است و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فأغشیناهم فهم لا يبصرون. و پیش روی آنان سدی و از پشت سرشان نیز سدی قرار دادیم آنگاه دیدگان آنان را پوشاندیم لذا آنان نمی بینند وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اي پیامبر بر آنان یکسان است چه آنها را هشدار دهی و یا هشدارشان ندهی ایمان نمی آورند إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ای يامبر تو تنها كسی را هشدار میدهی که از این پند یروی كند و در نهان از خدای رحمان بترسد پس او را به آمرزش و پاداشی گرامی بشارده اینا نحن نحیل موتا و نکتب ما قدم و آثارهم و کل شیئن فی امام مبین یقینا ما این که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از اعمال نیک و بدکست پیش فرستاده اند و آثار و گامهایشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر شمار کردیم. و لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء هل مرسلون ای پیامبر برای آنها مثال و داستان مردم آن قریه را بزن چون رسولان ما به بدانجا آمدند اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِفٍ فَقَالُوْ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ آنگاه که دو نفر از رسولان را به آنها فرستادیم پس آنان را تگذیب کردند سپس با فرستادن سومی آن دو را تقویت کردیم پس گفتند همانا ما به سوی شما فرستاده شده این <سسو> انتم الا بشر مثلنا انزل الرحمن من شيء انتم الا آنها در پاسخ گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی را نازل نکرده است شما فقط دروغ می گویید. قالوا ربنا يعلم اننا اليكم پیام پيامبران گفتند پروردگار ما میداند که ما قطعاً به سوی شما فرستاده شده‌ایم و ما علینا الا البلاغ المب و بر اوخته ما جز رساندن پیام آشکار نیست قالوا ان تطیرنا بكم لا ان لم تنته لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب علیم. آنها گفتند بیگمان ما شما را به فال بد گرفته ایم اگر دست بر البته سنگ سارتان خواهیم کرد و از سوی ما عذاب و شکنجه دردناکی به شما خواهد رسید قالوا طائركم معكم این ذکرتم بل انتم قوم مصرفون پیام بران گفتند شومی و فال بدتان با خود شماست اگر به شما پند داده شود چونین میگویید و به فال بد میگیرید، بلکه حقیقت این است که شما مردمی اصرافکار هستید وجاء من اقص المدينة رجل اسعا قال یا قوم التبع المرسلین و مرد مؤمنی از دور ترین نقطه شهر شتابان آمد و خطاب به مردم گفت ای قوم من پیام بران خدا را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون کسانی را پیروی کنید که از شما مزدی طلب نمی کنند و خودشان هدایت یافته اند و ما لیلا اعبدالذی فطرنی و ترجعون و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است همه به سوی او بازگردانده می شوید اعتخذ من دونه آلهتا این یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون آیا غیر از او معبودهایی را برگزینم که اگر خداوند رحمان بخواهد به من زیانی برساند شفاعت آنها چیزی را از من دفن نمی کند و مرا نجات نخواهند داد ایننی ایزا لفی ضلال مبین اگر چون این کنم یقیناً آنگاه من در گمراهی آشکاری خواهم بود. اینی آمنت بی ربکم فاسمعون من به پروردگارتان ایمان آورده هم. پس سخنان مرا بشنوید. قیل دخل الجنت قال یا لیت قومی اعلمون. پس او را شهید کردند به او گفته شد وارد بهشت شد گفت ای کاش قوم من میدانستند بما غفر لی ربی و جعلني من المکرمین که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی شدگان قرار داده است